ای سبا گر بگذری بر ساحل رود عرس بوسه زن بر خاکان وادی و مشکین کن نفس منزل سلما که بادش پردم از ما صد سرسلام پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس محمل جانان ببوسان گه بزاری عرض دار. که از فراغت سوختم ای مهربان فریاد رس من که قول ناسهان را خوندم ای قول ربا گوشمالی دیدم ات هجران که اینم بند بس اشرت شب گیر کن می نوش کن در راه عشق شبروان را آشنایی هاست با می رسست عشبازی کار بازی نیست ای دل سر به باز زن که گوگ عشق نتوان زد به چوگان عبست دل به رغبت می سپارد جان به چشم مستیار گرچه حشیاران ندادند اختیار خود بکست توتیان در شکرستان کامرانی میکنند. از تحصر دست بر سر می زند مگس. نام حافظ گر براید بر زبان کلک دوست از جناب حضرت شافم بس است این ملتم است